تو موباهات خیلی باید دیفت کرد اونا بحث حرام و واجب و اینا تکلیفش معلومه با تقویه الله آدم حل میکنه ولی در موباهات گاهی گناهان زیادی پیش میاد گاهی مشکلات زیادی پیش میاد چرا؟ عقلش انسان به کار نمیگیده مثلا یه دفعه دنگیش میگیده میگید ماشینه رو همز کنیم چیکار کنیم؟ حالا این مثلا این ماشین معمولی هست و میگه حالا چه بدیم بچه ها سوار مثلا شاسی بشن حالا مودل های دارن فیلان میگه خب ما الان پنج شیش دومن ها 5 شیش دومن الان یعنی پنج شیش ملیار اون موقع که خیلی پول بود 5 شیش دومن میگه خب باشه حالی کارش میکنیم بگه ها چیکارش میکنیم به قرض و قلو و مکافات و باید چکا برگشتی و میان بگیر و باگیر و کارهای موبا باید با مشورت همراه باشه این نکته مهمه باید با عقل میگه من پسرها میخوام زن بدن میریم دنبال یه خانواده که اصلا چی میگن؟ لاکچری میگن؟ تاپ باشه و فلان باشه و اینها هم سری تو سرها داشته باشن هم خود دخترم مثلا بروز باشه چی باشه این باشه آن باشه میگه اب نداره این کار شهر شرعند اشکال داره نه شرعند چه اشکالی داره یه ازدواجی صورت بگیره اما ببین یه چیزهای هستا یه مناصبتهای هست باید رایت بشه خب فهم باید باشن این دستورات دینی در مورد عمل به مباهات کم نیست خیلی زیاده اما دستور به معنی خاصش نیست که عمر باشه و نهی توصیه است توصیه است که اگه میخواین کارا رو بکنین که مباهه اینجوری عمل کنید شار مقدس راه نکرده فرمایش کرده ولی فرمایش عمری و نهی نیست به عنوان عقل کل راهنمایی کرده این میگه نمک آشت از من بخواد در رویت قدسی هست خدای متعال به حضرت موسا الان نبی نابعه علیه و علیه السلام میفرمد که یا موسی نمکه آشت هم از من بخواه نمک آشت که نمک دیگه سنگ میریم مثلا از کوه نمک پودرش میکنیم یا از دریا مثلا تصفیهش میکنیم این دیگه از خدا بخوا. این کنایه است از که از اینکه تو مباهاتتون را هم بیایی من راهنمایی کردم مسئله مشورت را چقدر تأکید میکنه خدای متعال در قرآن در روایات مخصوصا اینکه درایت داشته باشید فهم داشته باشید هی تأکید میکنه این برای امور مباه هست در امور مباه حتما باید این بزرگترها واقعا تجربه هم. خدا حفظ کنه همهشون رو خدا رحمت کنه همهشون رو اونهایی که رفتن کلامشون کوتاه و پرمغزه میگفتن و میگن بزرگترها که این رفیقه بهتر از خودت همیشه داشته باشه یعنی پول باشه که بشه کی که میگه نه عقل و شعورش بیشتر باشه تحملش کن بالاخره هر کسی چون غیر منصومه یه سختی هایی داره دیگه یه نقص داره باید تحملش کرد تو حاشیه نرف که ترک کنه آدم اینا رو یه دونه بهتر از خودت همیشه داشته باشه همیشه باعث میشه که تو این کارهای مباه آدم سوتی نمیده خلاصه میگه دختره رو نمیشه چی شد نمیشه چطور شد دست این مثلا آدم اکیویلی دادیم حالا اصلموش شده شاخ بی خب، یه مشورتی چیزی می‌کردیم اون نپویدیم مثلا چی رو شد خیلی مهمه تو امور ما انسان مشاور داشته باشه تأمل داشته باشه در عین اینکه کار خیر باید سری انجام بشه ولی عجله نمواد بشه با سرعت و با دقت میشه امر خیر رو انجام داد و مشکلات رو هم راب کرد هم دف کرد